فصل پنجم آهسته تر بروید تا سری تر برسید یک ضرب المثل فرانسوی میگوید روم یک روزه ساخته نشده است امروز کمی پیاده روی میکنید زربان قلبتان را بالا میبرید وزنه میزنید و متفاوت تغذیه میکنید سپس فردا صبح که از خواب بیدار میشوید و در آینه نگاه میکنید همان آدم قدیمی را میبینید شما برای مشاهده ی هر گونه نتایج قابل توجه و ملموس باید به حد کافی در این مسیر باقی بمانید انجام ندادن این کارهای ساده خیلی آسان و در حال حاضر وسوسه کننده است پس چه چیزی باعث می شود که هر روز این کارهای ساده را انجام دهیم؟ نیروی اراده همانطور که پدرم، مادرم، معلمم و حتی خودم همیشه می گفت تو فقط به کمی اراده بیشتر نیاز داری واقعا؟ به نظر من که اینطور نیست به قدرت اراده بیش از حد اهمیت داده شده است. بسیاری از مردم اراده را همچون حاکم خودمختار و ظالمی احساس می کنند که با یک سیستم پاداش و جزای ساختگی و مستبدانه همراه است. در ضمن بسیاری از ما گرایشی قریزی به مقاومت کردن در برابر نیروهای اجباری داریم حتی وقتی که خودمان این نیروها را اعمال کرده باشیم. نیروی اراده شما را فقط تا آنجایی پیش می برد که نزدیک به استانی تحملتان باشد. نه، قدرت اراده باعث نمی شود که هر روز آن کارهای ساده را انجام دهید. اگر می خواهید به جای رو به زوال رفتن، خرد شدن، تحلیل رفتن و مرکب کردن اثر برتری خفیف در جهت منفی خودتان را در مسیر ترقی پیشرفت، بهتر شدن و مرب کردن اثر برتری خفیف در جهت مثبت نگه دارید، به چیز دیگری نیاز خواهید داشت. شما به یک نیروی کمکی نیاز دارید. اگر می خواهید زندگیتان را در مسیر تغییرات مثبت دائمی هدایت کنید، نیاز به بهرهبرداری از قدرت منترین نیروی تغییر در عالم هستی دارید. خوشبختانه، این نیرو همواره با شما و در کنار شماست و آماده از تا به شما کمک کند. البته اگر بخواهید، این نیرو زمان است. قدرت زمان آیا تا به حال به گرند کنیون رفته اید؟ شاید از بالای آن پرواز کرده باشید یا تصاویرش را در مستنت های کتاب دیده باشید. گراند کانیون منظری تماشایی و شگفتانگیز است که در شرق لاس وگاس واقع شده است. عکسها و تصاویر موجود ادالت را درباره وسعت و گستری این شگفتی زمینشناسی رعایت نمی کنند. این دره زیبا و خارق‌العاده با ریکهی به طول 480 کیلومتر، عرض حدود 30 کیلومتر و عمق حدود 1.5 کیلومتر در سراسر آریزونا به وجود آورده است که حاکی از میلیونها سال پیشینه رسوبی و فرسایشی است. آیا می توانید آن را در ذهنتان تصور کنید؟ این تصویر را برای لحظه‌ای در گوشه ذهنتان نگه دارید و به آخرین باری بیاندیشید که در زیر بارش باران شاهد این بودید که جوی کوچکی از آب در امتداد خیابان یا در حیات خانهتان براه افتاد. حالا از یک سو آن یاد بوده طبیعی قول پیکر و از سوی دیگر این جوی کوچک را در نظر بگیرید و این را بدانید که تنها یک تفاوت قابل توجه بین این دو وجود دارد. زمان آنجوی کوچک حاصل از آبی است که برای چند دقیقه یا چند ساعت در امتداد زمین جریان می‌یابد. گرند کنیون نتیجه همان ماده است که به همان طریق بر روی زمین جریان یافته است، فقط به مدت تقریباً شش میلیون سال. یکی از شگفت‌انگیزترین ویژگی‌های برتری خفیف این است که فرایندی بسیار بخشنده است. برتری خفیف فقط به همکاری کوچکی از سوی شما نیاز دارد و با این حال بازده زیادی را نصیب شما می کند. فقط یک سنت از شما درخواست می کند و میلیون ها دلار به شما برمیگرداند. سهم شما از این معامله شروع با یک سکه یک سنتی است و جهان اطراف شما باقی این معادله را تأمین می کند. نیرویی که برای این کار از آن استفاده می کند زمان است. شما برای مشاهده تأثیرات زمان نیازی به گذشت میلیون ها سال ندارید. برای سنبل آبی فقط سی و یک روز طول کشید تا سطح آبگیر را بپوشاند. سکه یک سنتی نیز فقط در سی و یک روز به ثروتی هنگفت تبدیل شد و فقط حدود یک ساعت زمان لازم بود تا با تبدیل خامه بکره زندگی آن قرباقه کوچک نجات پیدا کند. نکته داستان نجات پیدا کردن قورباغه از طریق تلاش زیادش در سطل خامه درباره استقامت عزم یا نیروی اراده نبود مشخصا درباره قدرت و نیروی آن دست و پا زدن های و اندک نیز نبود نقطه آن داستان قدرت زمان بود دست و پا زدن ضعیف و ناچیز او هیچگونه تأثیر تاثیر مشهودی بر خامه نداشت و به همین دلیل بود که برادرش تسلیم شد نکته داستان در این بود که یکی از آن دو قورباغه تلاشش را به اندازه کافی ادامه داد تا اینکه قدرت زمان خودش را نشان داد و به او پیوست. راز زمان این است. زمان نیرویی است که آن اقدامات کوچک تقریبا نامحسوس و ظاهراً ناچیز روزانه را به نتایجی بزرگ و دور از انتظار تبدیل می کند. اقدامات روزانه مکرر و پایدار به علاوه زمان، برابر است با کسب نتایج دور از انتظار. شما اقدامات را تأمین می کنید و جهان زمان را فراهم خواهد کرد. نکته اش در این است که فقط اقداماتی را انتخاب کنید که وقتی با این تقویت کننده جهانی ترکیب می شوند نتایج مورد نظرتان را به وجود آورند. یعنی اقدامات روزمره تان را طوری انتخاب کنید که زمان به نفع شما عمل کند نه علیه شما. زندگی آنی وجود ندارد اگر همان پیشنهادی که آن مرد ثروتمند به پسرانش داده بود به شما داده میشد شما یک میلیون دلار را انتخاب می کردید یا سکه یک سنتی را خیلی از مردم همانند پسر دوم پول نقد را انتخاب میکنند اینطور نیست یک میلیون دلار به صورت نقدی همین حالا و البته انتخاب اشتباهی انجام می دهید و فریب می خورید. همونطور که میلیون ها نفر از مردم کره زمین هر لحظه از هر ساعت هر روز با این دو کلمه اقوا کننده فریب داده می شوند. همین حالا یک روز مردی را دیدم که بیقرار و ناآرام در مقابل یک دستگاه ماکروفر ایستاده بود و در حالی که از دریچه کوچک ماکروفر به قزایش نگاه می کرد زیر لب می گفت یالا، یالا دیدن این منظره من را خیلی شگفت زده کرد. آیا شصت ثانیه آنقدر که باید سریع نیست؟ کاملا بدیهی است که ما در جهان دستیابی به همه چیز با فشردن یک کلید و جهان قضاهای آماده زندگی می کنیم و همه چیز را همین امروز و همین حالا می خواهیم. این موضوع به این دلیل نیست که نسبت به اجدادمان خلق و خوی ناشکیباتر داریم، بلکه دلیلش این است که ما با شیوه ی تفکری کاملا متفاوت خو گرفته‌ایم. فلسفه‌ای کاملا متفاوت. در زندگی یک روال طبیعی وجود دارد. ابتدا کاشت، سپس داشت و سرانجام برداشت. در اصر کشاورزی، همه مردم این موضوع را میدانستند و چیزی نبود که کسی مجبور باشد در فکر کند. موضوعی بدیهی بود و همه چیز این گونه در جریان بود. کاشت، داشت، برداشت. اما این موضوع تغییر کرد و امروز ما باید آن را یاد بگیریم. در جهان امروز همه مردم میخواهند از کاشت مستقیماً به برداشت برسند. ما با عضویت در باشگاه ورزشی دانه را می کاریم و سپس وقتی که چندین روز به باشگاه می رویم و هیچ گونه برداشتی نمی بینیم، ناامید میشویم. ما به باشگاه ورزشی پیوسته ایم نه؟ ما برایش وقت گذاشته ایم, نه؟ چرا نباید انداممان کمی متناسبتر شود. این منطق بخت آزمایی است؟ چرا من باید مهارتها، روابط و تجربیاتی کسب کنم که برای کسب پول لازم است؟ چرا نمی توانم فقط یک بلیت بختازمایی بخرم و به این پول برسم؟ مرحلهی که از آن قفلت کرده ایم همان است که قدرت واقعی از آنجا ناشی می شود یعنی مرحله داشت، پرورش و نگهداری این مرحله برخلاف کاشت و برداشت فقط از طریق بعد صبر و شکیبایی در گذر زمان رخ می دهد از آنجایی که ما تمدنی از نسل فیلم‌ها و تلویزیون هستیم، درباره ماهیت زمان در زندگی واقعی کمی سردرگم شده ایم. ما دیگر مفهوم زمان را درک نمی‌کنیم. من از تلویزیون و فیلم‌ها انتقاد نمی‌کنم. فیلم یک قالب هنری شگفتانگیز و تلویزیون یک رسانه قدرتمند است و در دستان هنرمندان واقعی، هر دوی آنها می‌توانند درس‌های باارزشی از زندگی را به ما یاد بدهند. در یک فیلم عالی، شما می توانید پیروزی روح انسان در برابر بدبختی و فلاکت، داستانی هی انگیز از کشمکش بین انجام دادن کار درست و تسلیم شدن در برابر وسوسه های دنیاوی روی روی نسل ها به نتیجه رسیدن یک داستان آشقانه، مبارزه ها و تولد یک ملت و غیره را ببینید. اما همه اینها فقط در دو ساعت به پایان می رسند. آیا می توانید تصور کنید که یک ملت فقط در دو ساعت به وجود آید؟ یا ملاقات با شخصی که عشق زندگی شما خواهد شد فقط در دو ساعت رخ دهد؟ ده یعنی قرارهای آشغانه، اظهار عشق، ابراز احساسات عاشقانه تلاش و تقلا پیروز شدن، ازدواج کردن و زندگی شادمان پس از آن فقط در دو ساعت؟ البته که نه. ما انتظار داریم که یک سکانس 3 ای از عاشق شدن یا بکسور در حال تمرین یا تبدیل شدن یک ایده باور نکردنی به یک کسب و کار چند میلیون دلاری بسازیم و به پایانی حماسی برسیم. در جهانی که از قهوه های فوری، صبحانه های آماده، اعتبار آنی، خرید فوری، اطلاعات آنی و اخبار 24 ساعته پر شده است، ما به طور خطرناکی در حال نزدیک شدن به قفلت از واقعیت و اعتقاد به این موضوع هستیم که به زندگی آنی دسترسی داریم. اما زندگی یک لینک کلیکی نیست. هزاران سال پیش لعطف نوشت بزرگترین خوبیها همچون آب است. به دهها هزار چیز حیات میبخشد. اما با آنها رقابت نمیکند. آب در مکانهای جریان میآید که بسیاری از مردم از آنها تنفر دارند و بنابراین نزدیک به حقیقت است. باید بگویم در چین باستان دهها هزار معادل همه چیز بود. من این قسمت را دوست دارم آب در مکانهای جریان می‌یابد که بسیاری از مردم از آنها تنفر دارند به عبارت دیگر بسیاری از مردم به آنجا نمیروند. آنها قدرت این موجود بی صدا را درک نمی کنند. آب که دانشمندان آن را حلال جهانی مینامند، استعاره مناسب و درخوری برای زمان است و شما میتوانید در آن عبارت کلمه زمان را جایگزین کنید و هنوز هم به همان اندازه مؤثر خواهد بود زمان مانند آب است به همه چیز حیات میبخشد و در مکانهای جریان می آبد که بسیاری از مردم به آنجا نمی روند. همچنین می برتری خفیف را نیز در این عبارت به کار ببرید. قسمت هیجانانگیز کجاست ؟ دلیل خاصی وجود دارد که سینما و تلویزیون آن گرگونی بزرگ را که در زندگی واقعی ماه یا سالها به طول می به یک کلیپ سیسانانی با یک موسیقی فوق خلاصه میکنند. و البته این موضوع فقط به این دلیل نیست که زمان کافی ندارند آنها حتی اگر زمان کافی داشتند باز همین کار را نمی کردند. زیرا این کار کسل کننده و ملالآور است برتری خفیف کسل کننده است چرا که اثر حیجانی آنی ندارد اما وقتی بدانید برتری خفیف به چه منجر می شود می برید که چقدر هیجانانگیز است اما در ابتدا وقتی که از نتایجی که حاصل می شوند بیخبر هستید خسته کننده و کسل کننده به نظر میرسد. درباره گراند کنیون، هیچ چیز کسل کننده و مللاوری وجود ندارد. اما اگر می نشستید و در طی صد سال اول آن را مشاهده میکردید نظر دیگری درباره آن داشتید. اگر انتخاب درست موضوع خیلی مهمی بود یا کاری هیجانانگیز و سترگ و سخت بود عمل کردن به برتری خفیف به موضوعی کاملا ساده‌تر تبدیل می‌شد چرا زیرا در آن صورت واضح و بدیهی بود و نیازی به این کتاب نداشتید اما مسئله اینجاست که انتخاب درست کار هیجانی و سترگی نیست همانطور که در فصل قبل دیدیم، این یک انتخاب معمولی و پیش پا افتاده است و احساس قهرمانانهایی به انسان دست نمی دهد. اینکه تصمیم بگیرید به بالای یک ساختمان در حال انفجار بروید و به هلیکوپتر در حال فرار آدمهای شرور بچسبید و خودتان را از آن بالا بکشید و بمب را خنسا کنید و شهر را نجات دهید، تصمیم های است. اینکه کمربند ایمنی اتومبیل تان را ببندید یا نه. یک تصمیم پیش پا افتاده غیر جانی و کوچک است که هیچ کسی با آن توجهی نمی کند. اما حدس بزنید کدام تصمیم است که هر سال جان صدها هزار نفر را نجات می دهد. وقتی که قهرمان یک فیلم تصمیم درستی می گیرد، محیج و شکوه است. مشکل اینجاست که زندگی شما فیلم سینمایی نیست. زندگی واقعی است. اگر گرفتن یک تصمیم درست برتری خفیف محیج بود، بازخوردی آنی دریافت می کردید، همه ی تماشاچیان سالن سینما تشویقتان میکردند فریاد هورا سر می دادند و جیغ می کشیدند. اما این اتفاق رخ نمی دهد. بزرگترین مشکل یک تصمیم درست برتری خفیف این است. عدم بازخورد آنی مسئله این است که این تصمیم درست با شکو شگفتانگیز و مهیج است. آیا از فصل قبل تغییری را که در شرکتمان به وقوع پیوست به یاد در درآمد شرکت در طی پنج سال از هفتاد میلیون دلار به 400 میلیون دلار رسید. حالا این موضوع مهیج است. از دور که به قضیه نگاه کنیم پنج سال خیلی طولانی نیست، اما پنج دقیقه هم نیست. اگر در چند ماه اول یا حتی سال اول ما را با یک دوربین فیلمبرداری زیر نظر می گرفتید و یک فیلم مستند تهیه می کردید تضمین می کنم که تجربه جالب و هیجان انگیزی نمی شد. شما نمی توانستید مهیج بودن آن را ببینید چرا که هنوز زمان کافی برای اثرگذاری آن سپری نشده بود برتری خفیف می تواند در ری همچون گرند کنیون را به وجود آورد برتری خفیف می تواند هر کاری انجام دهد اما باید به با آن زمان کافی بدهید تا قدرت زمان شروع به اثرگذاری کند. تصمیمات درست یا اشتباهی که در این لحظه می گیرید تاثیر خیلی کم یا غیرقابل توجهی در نحوه سپری شدن امروزتان خواهند داشت. اما دقیقا همین اقدامات غیر هیجانی و ظاهرا ناچیز هستند که وقتی در طول زمان مرکب می شوند به طور چشمگیر و هیجانانگیز بر زندگی شما اثر میگذارند. بنابراین قسمت هیجانانگیز آن کجاست ؟ قسمت هیجانانگیز آن در انتهای داستان ظاهر می شود و این اتفاق دو ساعت دیگر رخ نمیدهد بلکه شاید دو سال دیگر اتفاق بیفتد و شاید دوازده سال یا بیست و دو سال طول بکشد. گرفتن تصمیمات درست و انجام دادن اقدامات صحیح واقعا کار آسان است. به قدری آسان که خندهدار است اما انجام ندادنشان نیز به همان اندازه آسان است و اگر شما آن کارها را انجام ندهید همین امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد. نه شما را خواهد کشت و نه به شما صدمه ای می زند. در حقیقت به هیچ وجه هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. نه امروز و نه فردا اما با گذشت زمان چطور مشاهده با چشم بسیرت یک مثال خوب دیگر برای برتری خفیف مجسمه بانوی ادالت است. تندیسی با چشم‌های بسته. این تندیس که پیکره زنی است که یک ترازو و یک شمشیر در دست دارد، بیان کننده ی اندیشه اندیشه‌ی ادالت است و در زمان امپراتوری روم باستان پدید آمده است. این تندیس در آن روزها چشمبندی به چشم نداشت. آن چشمبند در قرن شانزدهم و در طی دوران رونسانس که تفکر امروزی ما درباره دموکراسی و حقوق بشر شکل گرفت به تندیس اضافه شد. آن چشمبند به این معنی نیست که عدالت ناست همانطور که مردم گاه یوقات به تعنت چونین میگویند. مفهوم آن چشمبند این است که ادالت واقعی تحت تأثیر مسائل خارجی قرار نمیگیرد. این مفهوم دقیقا همان طوری است که شما باید فلسفه برتری خفیف را بپذیرید اگر می‌خواهید برتری خفیف را درک کنید و با بکار بستن آن زندگی رویاهایتان را خلق کنید نباید تصمیمات روزمرتان را بر اساس شواهد و مدارکی بگیرید که چشمهایتان می‌بیند. شما باید تصمیماتتان را بر اساس آنچه میدانید بگیرید شما باید با چشم بسیرت ببینید شما باید موفقیت و شکست را به مسابه دو کفه ترازو تصور کنید، شبیه به همانی که در دستهای بانوی ادالت قرار دارد. فرض کنید در زندگیتان در وضعیت سختی به سر میبرید، ترازو به صورت بدی نامتعادل شده و کفه منفی آن کاملا پایین است، خواه سلامتیتان باشد یا وضعیت مالی یا زندگی زناشویی شما به جایی رسیده اید که اشتباهات کوچکتان در طول سالهای متمادی مرکب شده اند و حالا آن را احساس می کنید مطمئنا خیلی عالی می شد اگر می توانستید به طریقی کار مهیجی انجام دهید و ناگهان همه چیز را درست کنید این اتفاق ممکن است در یک فیلم سینمایی رخ دهد اما این زندگی شماست چه کاری می توانید انجام دهید چه اتفاقی می افتد اگر یک اقدام کوچک، ساده و مثبت را به کفه موفقیت اضافه کنید؟ هیچ چیز مشهودی اتفاق نمی افتد. چه اتفاقی می افتد اگر یک اقدام مثبت دیگر اضافه کنید؟ باز هم هیچ چیز ملموسی رخ نمی دهد. چه می شود اگر به این روند ادامه دهید و یکی دیگر اضافه کنید، سپس یکی دیگر و یکی دیگر؟ قبل از اینکه زمان زیادی بگذرد، کفه ترازو حرکت می کند، حتی خیلی کوچک و جزئی و سپس دوباره این اتفاق می افتد. و سرانجام آن کفه سنگین شکست شروع به بالا آمدن می کند، بالا و بالاتر می آید و ترازو شروع به متعادل شدن می کند. اصلا مهم نیست که از دوران گذشته چقدر وزنه منفی بر روی کفه دیگر قرار دارد. فقط با اضافه کردن آن وزنه های کوچک موفقیت به صورت یکی یکی و با اضافه نکردن وزنه جدید به کفه شکست سرانجام و به طور حتم ترازو را به دلخواه خودتان جابجا می کنید. ابتدا وقتی اولین اقدامات مثبت بسیار کوچک و ناچیز را اضافه می کنید اصلا هیچ حرکتی نمی بینید. و اگر درباره انتخاب و تصمیم هایتان با شواهدی که چشم هایتان میبینند قضاوت کنید ناامید میشوید این موضوع از هر 20 نفر 19 نفر را بسیار ناامید میکند و آنها انصراف میدهند و تسلیم میشوند اهمیتی ندارد که تا به امروز در زندگیتان چه کارهایی انجام داده اید اهمیتی ندارد کجا هستید و ممکن است تا کجا بر روی منحنی شکست لغزیده باشید هر وقت که بخواهید میتوانید از نو شروع کنید و یک الگوی مثبت از موفقیت ایجاد کنید حتی از همین حالا اما لازم است که به این فرایند ایمان داشته باشید چرا که در همان ابتدا به وقوع و پیوستنش را نمیبینید اگر هایتان را بر روی شواهد بنا کنید یعنی آنچه می میتوانید ببینید در این صورت غرق میشوید لازم است که هایتان را بر روی فلسفه‌تان بنا کنید بر روی آنچه می‌دانید، نه آنچه می‌بینید.